با قسمت چهارم از مجموعه پادکست های مکالمه انگلیسی برای همه در خدمت شما زبان آموزان و دوستان عزیز هستیم در درس چهارم قصد دارم که شما رو با یه سری از نکات مربوط به تلفظ حروف در زبان انگلیسی آشنا بکنم ما هر چقدر هم که در مکالمه انگلیسی فلوئنت یا روان هم باشیم اما اگر تلفظ ها رو نشناسیم اون اکسنت یا لحجه ما به صورت خاص امریکن یا بریتیش نخواهد بود و همین خاطر تلفظی سری از حروف بسیار مهمه جدای از اینکه ما بعد از تلفظ حروف حتما باید فنوتک ها رو کار بکنیم تا بتونیم استفاده صحیح از فرهنگ لغت رو یاد بگیریم اولین حرف که بسیار مهم هست ما تلفظ رو باید یاد بگیریم حرف ته هست در زبان انگلیسی برای حرف ت و بعد از اون حرف دی رو بررسی خواهیم کرد این دوتا حرف باید نکه زبان به سمت لسه ها برخورد بکنه لسه های بالا و زمانی که زبان به سمت پایین تر میاد یا به سمت انتهای دندون به سمت پایین حرکت که بکنه از اون حالت اصلی خودش خارج میشه و تلفظ انگلیسی شاید دست میده عنوان مثال ما در زبان فارسیم وقتی میخوام بگیم می مهدی انقدر دیگه نوک زبان میاد پایینتر میشه مهتی یا مثلا میخوایم بگیم تهران این تهران پخش میشه در زبان انگلیسی از برخورد کردن نوک زبان با قسمت لحظه های بالا یعنی یه مقداری از ها که به سمت لسه نزدیک میشه اون قسمت محل تماس نوک زبان هست برای تلفظ حرف ت و تلفظ حرف تی اون حرف تی به اون صورت درست خواهد بود که یه مقداری از بوی حرف چ هم با شما درش احساس بکنید خب دقت بکنید ت خب پشت سر من تلفظ بفرمایید تیچر تیچر fantastic fantastic tablet tablet table table خوب دقت بکنید کلمه log post یا turtle اگر خوب تلفظ بشه شخص شنونده یک لنسد دو 4 این خطای شنیداری خواهد شد که شما نکنه حرف چر رو دارین تلفظ می‌کنید درصدی که ما می‌گیم turtle turtle turtle خب برای حرف د هم باید دو که زبان قسمت لسه‌ها برخورد بکنه د د افتر می پلیز دور داد داد دی دیپ زبان نمیان. خب <تصفح> حرف بعدی که بسیار تلفظش مهم هست <تصفح> حرف تی ایچ هست که خیلی دوستان متاسفانه اشتباه تلفظ میکنن و اچ تلفظ میکنند به صورتی که H تلفظ صحیش هست. همونطور که دبلیو هم تلفظ غلطی هست و تلفظ صحیحش دبلیو هست. حرف تی ایج دو تا تلفظ داره که هر اتاش هم تلفوزهای عربی هستن مثل حرف دابلیو که اون هم عربی یعنی ما به طور کلی سه تا تلفظ داریم که در واقع یه جورایی میشه گفت تلفوزهای عربی مربوط به این قسمت محصوب میشم خب دقیقا بفهمید بعضی از مواقع تی ایج صدای فه سنوخته میده کافی نکه زبود رو قسمت دندونهای بالا بزنید فه. فه. مثل این هایی که مثلا نکه زبانی صحبت میکنن مثلا میخوام میگن حسین میگن حسین موفن، مرتدا. این که نوک زبانی هستن این دوتا حرف خوب تلفظ میکنن مثلا کلمه تم که در موبایل میگی تم موبایل تا عوض کن این کلمش هست theme تلفظش theme نوک زبان به دندونه بالا برخورد میکنه theme please change your theme your mobile theme your cell phone's theme Uh, repeat after me please thank you thank you i think i think خب مواقعی هم پیش میاد که تلفظ صدای دال زال میده ضال نوک زبان قسمت دندانه بالا بخورد میکنه مثل they یعنی آنها که ما در زبان فارسی میگیم دی یا دیز یا درت یا دیر یعنی همهشون صدای دی میدن repeat they this that there hi there how it going حرف بعدی حرف R هست حرف R یکی از اون حروفایی هست که خیلی به صحبت کردن ما لحجه میده خصوصا خانم ها یا افرادی که مثلا میخوان بگن که مثلا زبان کار کردن یا از این دست موقعی صحبت کردنشون اینجور صحبت میکنن حتی قصد جسارت ندارم، اما خب مزاه عرض میکنم بعد بحث آموزشی هست یا در فیلم هایی که از تریزون شما میبینید یه خارجی وقتی که در یک سریال فارسی میخوان صداشو شو تقلید بکنن این حرف R بسیار مشهوده کافی که شما که زبان رو به سمت عقب بکشید یعنی زبان رو به سمت عقب دهان بکشید این تلفظ انجام میشه For. repeat after me please براساس متن کاربر فهمیدم. فور war, war warm, warm, horse, horse, horse, practice, practice, calendar, calendar. خب، حرف بعدی صدای تلفظ حرف K هست در زمان انگلیسی حرف که یا همون کاف خودمون اگه بخوایم خیلی ساده و روان خیلی از شما ارز بکنم که تلفظش بیچی صورت هست ما در زبان فارسی دو نوع کاف داریم کاف کاهو و کاف کلم در زبان انگلیسی کاف از نوع کاف کاهو هست یعنی پخش نمیشه کار کاهو بگین همون کافو در انگلیسی استفاده میکنیم کار repeat کار کات کپاسیتی capacity کمکوردر کماند کماند کنفرم کنفرم فانتاستی که فانتاستی که که درس چهارم که درس تلفظ حروف هست به درد شما بخور و بتونید از اون نهایت استفاده رو ببرید به امید درس آینده